و دوومین عادت ضد تنبلی صبوری کنید بهانه ای که از میان می رود مهم نیست همه ی ما دوست داریم نتیجه تلاش هایمان را بلا فاصله ببینیم وقتی هم که این اتفاق نمی افتد به آسانی معیوس و تسلیم می شویم اغلب اوقات به خودمان میگوییم که هدفمان از اساس مهم نبوده است حال که به واقع اینطور نیست نکته مهم آن است که به یاد داشته باشید که نتایج یک شبه به بار نمینشینند. شما باید همچنان که به آهستگی و پیوستگی پروژه تان را به سوی هدفتان پیش میبرید صبور باشید و با آن مدارا کنید. برای انجام این کار سه راه هست. نخواست باید درک کنید که نتایج برای به بار نشستن به زمان احتیاج دارند. وقتی که شما پیشرفت بلافاصله در کارتان نبینید، ناامید و تسلیم شدن آسان است. رشد تدریجی نتایج و نزدیک شدن گام به گام به هدفتان باید فرایندی آهسته و پیوسته باشد. دوم آنکه مهم است که موفقیت‌های کوچک را گرامی بدارید. مثلا وقتی در خودتان مهارت خاصی را ایجاد می‌کنید، باید با هر قدم پیشرفت طبق هجدهمین عادت ضد تنبلی به خودتان پاداش دهید. البته که در آن وهله هنوز به هدف دراز مدتتان دست نیافته اید، اما از طی شدن هر مرحله از پروسه پیشرفتتان لذت ببرید زیرا که بدین ترتیب برای ادامه کار انگیزه و اراده به دست می میآورید و در آخر باید آماده گرفتار شدن در سکون نیز باشید. موفقیت فرایندی همواره رو به بالا نیست و مواقعی هم پیش میآید که در جایگاه خودتان ساکن و ثابت میمانید در همین اوقات است که باید تلاشتان را دو برابر کنید. هشتاد درصد فعالیت هایی که بهترین نتایج را در زندگی و کار شما به بار می را شناسایی کنید و بیشتر بر روی آنها کار کنید. اجرای این عادت: بعضی از مردم از محبت صبر برخوردارند و بعضی دیگر هم اینگونه نیستند. این یک ویژگی شخصی است و در افراد تفاوت می کند. اما اگر میخواهید از تمام تعالیم این کتاب بهره ببرید باید که صبر را هم به عنوان عادت نهایی ضد تنبلی بیاموزید. در اینجا به راهی سری برای آغاز این کار اشاره می شود یک. به هر مرشد و مشاوری که به شما قول موفقیت زود رسمی دهند بی اتناب باشید. دو پیشرفت خود را در ای که در دست اجرا دارید پیگیری کنید. سه هرگاه دیدید که قدمی را به تمامی در این مسیر برداشته اید، این موفقیت کوچک را گرامی بدارید و به خود پاداش بدهید. چهار وقتی به دوره سکون رسیدید، از خودتان توقع بیش از حد نداشته باشید. در عوض بر روی آنچه در حال پیشرفتن رفتن از تمرکز کنید و تلاشتان را دوبرا سازید اهمیت صبر را دست کم نگیرید. بسیاری از مردم در یک قدمی دست یافتن به موفقیت معیوس و تسلیم می شوند. درک کنید که به بار نشستن تلاشهایتان به زمان احتیاج دارد. اگر خود را به تمامی وقف مجموعه از برنامه های روزانه برای موفقیت در کاری کنید، هر روز خواه نخواه زرهی به کامیابی نزدیک خواهید شد.